روز رو به عصر می رفت و قایق هنوز کند و یک نواخت حرکت می کرد اما نسیمی که از مشرق می وزید به راندن قایق کمک می کرد و پیرمرد آرام همراه دریای کوچک پیش می رفت و آزار ریسمان بر پشتش نرمتر و آرامتر بود به هنگام عصر تناب از نو بالا آمد اما ماهی در هی اندکی بالاتر یک سر پیش می رفت. نور خورشید روی بازوی چپ، شانه و پشتش بود و این نشانه آن بود که ماهی راهش را از شمال به شرق کچ کرده است. حالا که یک بار ماهی را دیده بود می توانست درون آب مجسمش کند که با باله های پشتی رقانیاش که چون بال گسترده بود شنا می کرد، و با دوم عظیم قائمش ظلمت را میشه پیرمرد فکر کرد: نمیدونم تو ته تا... تا کجا رو میتونه ببینه؟ چشش خیلی درشتن و. عصب با اون که چشش خیلی ریزتره میتونه توی تاریکی ببینه؟ منم روزگاری میتونستم توی تاریکی ببینم. خب نه تو تاریکی مزه. اندازه که یه گربه میتونه ببینه. اکنون خورشید و حرکات مداوم انگشتانش گرفتگی دست چپ را به کلی باز کرده بودند و پیرمرد میخواست بیشتر سنگینی تناب را به دست چپش بسپارد و عضلات پشتش را بالا میکشید تا از عذاب تناب بکاهد. بلند گفت ای ماهی، اگه تو هنوز خسته نشدی؟ باید خیلی عجیب باشی. اکنون بسیار خسته بود و میدانست که شب به زودی از راه می رسد و سعی کرد به چیزهای دیگر فکر کند. به لیگهای بزرگ فکر کرد که در ذهنش به آنها گران لیگاس می گفت و میدانست که تیم یانکیهای نیویورک باید با تیگرس دیترویت مسابقه داده باشد. فکر کرد این دومین دو روز که از نتیجه خوه گو خبرم. ولی باید دلم قرص باشه و با. باید لیاقت دیماجی بزرگ داشته باشم که با وجود درد سیخک پاشنی پاش عالی بازی میکنه. از خودش پرسید. اصلا سیخک چیه؟ اون اسفویلا دو ما ماهیگیرا گرفتارش نمیشیم. نکنه دردش مثل اون باشه که یه خروس جنگی با سیخه که پاش بزنه به پاشنه پای آدم؟ یمونم نتونم مثل خروس های جنگی اون درد یا درد کور شدن یک یا دوچشم رو تحمل کنم و باز مثل اونا به جنگ ردن بدن. آدم چندونم از پرنده ها و حیوان بزرگ بیشتر نیست؟ با این همه ترجیح می دادم جای اون حیوان بودم و اون پایین دوی غر تاریکی دریا بودم. و بلند گفت نکنه کوسه ها سر برسن. اگه سر برسن خدا به من اون رم کنه. فکر کرد به نظر تو دیماجی بزرگ میتونست مدتی همچین طولانی با یه ماهی بمونه؟ به اندازه مدتی که من با این ماهی موندم، خب حط دارم میتونه، ساره بیشترش هم میتونه چون هم جوونه هم قوی، تازه پدرش هم ماهیگیر بوده، ولی اون وقت دیگه درد سیخک پاشنش عذابش نمیداد. بلند گفت، نمیدونم، من هیچوقت سیخک پاشنه نداشتم، به هنگام فرو رفتن خورشید پیرمرد برای آن که به خود قوت قلب دهد، به یاد زمانی افتاد که در قهوه خانه در کازابلانکا، با سیاهی از اهالی سینفوئگوس گس بود و سیاه در بارندازها از همه زورمندتر بود. آن دو یک روز و یک شب تمام را با آرنجهایشان که روی میز، روی خطی بود که با گچ کشیده شده بود، و با ساعدشان که راست بالا گرفته بودند و با دستهاشان که محکم در هم افتاده بود گذرانده بودند هر یک میکوشید زور دست دیگری را پایین برد و به میز برساند رویشان شرط بندی فراوان شده بود و مردم در نور چراغ روغنی به اتاق می آمدند و میرفتند و پیرمرد به بازو و دست سیاه و صورت سیاه چشم دوخته بود پس از هشت ساعت اول هر چهار ساعت یک بار داورها عوض می شدند که بتوانند بخوابند، خون از زیر ناخونهای خودش و سیاه بیرون زده بود و هر دو توی چشم همدیگر نگاه می کردند و به دستان ساعد یکدیگر نگاه می کردند و شرط بندان به اتاق می آمدند و میرفتند و بر سندلی های بلند می نشستند و پشت به دیوار می دادند و تماشا می کردند. دیوارها آبی براق بر بود و از جنس چوب بود و چراغها سایه یاند را بر دیوارها می‌افتاند سایه سیاه عظیم بود و وزش نسیم چراغ را تکان میداد و سیاه بر دیوار تکان میخورد. در طول شب نرخ ها بالا و پایین میرفت و به سیاه شراب میخوراندند و سیگارش را برایش روشن میکردند. بعد از شراب سیاه نیروی فوقلاده به دست می آورد. و یک بار دست پیرمرد را که آن زمان پیرمرد نبود و ال الخامپیون بود تا هفت سانتیمتر پایین آورد. اما پیرمرد تا حد مرگ زور زده بود و دستش را بالا آورده بود و همان دم به پیروزیش بر سیاه که خود جوان مرد و ورزشکاری بزرگ بود اطمینان یافته بود. و سهرگاه که شرط میخواستند قرعه بکشند و داور مخالف بود، پیرمرد همه نیرویش را جمع کرده بود و دست سیاه پوست را پایین و پایین آورده بود تا سرانجام به تخته میز رسانده بود. بازی صبح یک شنبه شروع شده بود و صبح دو شنبه پایان یافته بود. بیشتر شرط بندان تقاضای قرعه کشی داشتند. چون می‌خواستند به سر کارشون برای بارگیری گونیهای شکر یا شرکت زغال سنگ هاوانا به بارانداز بروند وگرنه همگی مشتاق بودند که بازی تا آخر ادامه یابد و پیرمرد بالاخره پیش از اینکه کار روزانه شروع شود بازی را تمام کرده بود تا مدتها پس از این ماجرا به او قهرمان می‌گفتند و بهار مسابقه دیگری برگزار شد این بار پول زیادی شرط بندی نشد و پیرمرد آسان مسابقه را برد چون در مسابقه اول اعتماد به نفس سیاه سینف را در هم شکسته بود. پس از آن چند مسابقه دیگر داده بود و بعد از آن دست کشیده بود. به این نتیجه رسیده بود که هر وقت بخواهد میتواند هر حریفی را به سختی شکست دهد. و فکر کرده بود که این کار برای دست راستش که مخصوص ماهیگیری بود مضر است. چند بار با دست چپش تمرینی بازی کرده بود. اما همیشه دست چپش سرپیچی کرده بود و از زیر بار خواسته های پیرمرد شانه خالی کرده بود و پیرمرد آن اعتماد نداشت. فکر کرد. حالا آفتاب خوب می‌پزاشش. نباید دوباره چنگ بشه. مگه اینکه شب هوا خیلی سرد بشه. نمیدونم امشب برام چی به بار میاره. هواپیمایی که به میامه میرفت از بالای سرش گذشت و سایه را که کله های ماهی پرنده را میترساند تماشا کرد. گفت با این همه ماهی پرنده و این دورو برا دلفین هم باشه. و تناب را عقب کشید تا ببیند می شود کمی ماهیش را بالاتر بکشد اما نتوانست. و تناب همان طور محکم بود و لرزش قطره های آب بود که نشانه پاره شدن تناب بود. قایق آهسته پیش می رفت و پیرمرد هواپیما را پایید تا از نظرش ناپدید شد. فکر کرد توی هواپیما نشستم باید خیلی عجیب باشه. نمیدونم از اون بالا دریا چه شکلیه. اگه خیلی بالا نرن حتما میشه ماهیا رو توی دریا دید. کاش یه بار خیلی آهسته تو ارتفاع سی متری پرواز میکردم و از اون بالا به ماهیان نگاه میکردم. وقتا که توی قایق شکار لاک پشت بودن دکل می نشستم و حتی از اون بلندی میتونستم ماهیا رو ببینم. از اون بالا دولفینا سبز و میشه بدن راه راه و خالهای عرقوانیشون رو دید و میشه حتی تمام گله رو دید. آه، رسیه ها چرا عمه ماهیای های روی آبهای عمیق پشتشون عرقوانیه و راه راه های یا خالای عرقبانی دارن؟ البته دلفینا به نظر سبز میان برون که اصلا تلایی هن اما با وجود این موقع غذاشون که میشه وقتی که راسترسی رسی گرست نباشن مثل نیز ماهی روی پهلوشون راه راه عرقبانی میافته نمیدونم از عصبانیت هم چی می میشن؟ در صورت زیاد. پیش از چیرگی ظلمت، انگامی که داشتند از جزیره از خزه دریایی میگذشتند که از آب بالا آمده بود و در دریای آرام کش قوسی می آمد و چونم بود که گویی اقیانوس زیر لحافی زرد عشق بازی می کرد، بلاب کوچک پیرمرد به کام دلفینی فرو رفت. با اولین جهش دلفین در هوا، در تهمانده آفتاب پیرمرد رنگ طلایی نابش را و پیچ و تاب را در هوا دید. و دلفین در پیچ و تاب وحشتش بالا می پرید و بالا می پرید و پیرمرد به سر کارش به انتهای قایق برگشت و همچنان که چنبتمه بود و تناب سنگین را با دست و بازوی راست گرفته بود، دلفین را با دست چپ به قایق می‌کشید و هر بار تناب را که به درون قایق می‌آمد با پای برهنه چپش نگه می‌داشت. وقتی ماهی در کوبش و پرش نومیدانه از این پهلو بان پهلو به پای قایق رسید، پیرمرد بر تخته قایق تکیه داد و ماهی را که همچون طلای سیقل خرده‌ای بود که بر آن خال‌های ارغوانی نشانده باشند، به قایق کشید. فکهای ماهی قلاب را عصبی و پر نجگاز گاز میگرفتند و با بدن بلند پهن و با سرش و با دمش مدام به ته قایق میکوفت تا آنکه پیرمرد بر سر درخشان زرینش کوفت و ماهی لرزید و بیحركت ماند پیرمرد قلاب را از دهان ماهی گرفت و ساردین دیگری را به آن تعمه زد و آن را به گوشهای قلتاند بعد آهسته به جلوی قایق برگشت، دست چپش را شست و با شلوارش پاک کرد و بعد تناب سنگین را از دست راست به دست چپ سپرد و چون که خورشید را که به دریا فرو می رفت و شیب تناب را می پایید دست راستش را در دریا شست، گفت هیچ فرقی نکرده، اما وقتی به جریان آب که از دستش می دقیق شد، دید که حرکت قایق به طور محسوسی کندتر شده است. گفت دوتا پارو رو ما به هم میبندم و توی عرض قایق میذارم تا حرکت ماهی توی شیب کندتر بشه. هم اون برای شب آماده است. هم من فکر کرد بزر دولفین رو کمی دیرتر پاک کنم تا خون توی گوشتش جمع بشه. میتونم کمی بعد این کار بکنم و پاروها رو محکم کنم تا ازشون یه مقاومت درست کنم. بهتره الان ماهی رو به حال خودش بذارم و این تنگ گروبی زیاد سر به سرش غروب آفتاب برای همه ماهیا سختترین موقع روزه. دستش رو در هوا خوشکاند و بعد با آن تناب را گرفت. و تا آنجا که می خودش را واداد و گذاشت که بدنش روی تخته قایق به جلو کشیده شود. طوری که همه زوری که پیرمرد میزد و حتی بیشتر از آنچه زورش می رسید بر گردن قایق افتاد. فکر شد. دارم یاد میگیرم چیکار چی کنم؟ یا اقلن حالا چی کار کنم؟ تازه یادت باشه پیرمرد از وقتی که اون به قلاب افتاده چیزی نخورده و با جسه عظیمش به غذای زیادی احتیاج داره. ولی من یه ماهی بونیتوی درسته خوردم. فردام یه دلفین میخورم. به دلفین دورادو میگفت. بعد موقع پاک کردنشم یک ازش بخورم. خوردنش از بونیتو سختره ولی خب هیچ کاری آسون نیست. بلند گفت. آی ماهی، <تصفيق> چطوری؟ من که خوبم و دست چپم بهتره و واسه یه شب و یه روز غذا دارم. تو قاید تو به در واقع حالش خوب نبود. چون درد پشتش که از گذاشتن تناب بود دیگر از درد گذشته بود و کرختیش او را به شک می انداخت. فکر کرد. ولی من از این بدتراشم دیدم، بریدگی یه دستم خیلی کمه و گرفتگی اون یکی هم از بین رفته. بام خوبن، علاوه الان از حیث خورد و از اون رو براترم. هوا تاریک شده بود، درست مثل همه ماههای سپتامبر های که هوا بلا فاصله پس از غروب خورشید تاریک می شود. پیرمرد به تخته فرسوده جلوی قایق تکیه داد و تا آنجا که می توانست، هم استراحت داد اولین ستاره ها درآمده بودند پیرمرد نام ستاره روجل را نمیدانست اما او را دید و میدانست که به زودی همه ستاره ها آیند و همه دوستان دوردستش با او خواهند بود بلند گفت ماهی هم دوستمه هم همچین ماهی نه دیده و نشنیده بودم ولی باید بکشمش شکرش باقیه که مجبور نیستیم ستاره ها رو بکشیم فکر کرد فکرشو بکن اگه قرار بود هر روز آدم مجبور باشه ماه رو بکشه خب ماه فرار میکرد اما فکرشو بکن که قرار بود هر روز آدم مجبور باشه خورشید رو بکشه شانس رو که اینطور نیست بعد دلش به حال ماهی بزرگ که تا آندم هیچ نخورده بود سوخت و اندوهش برای ماهی یک دم در تصمیمش به کشتن او خلل وارد نمی کرد. فکر کرد، شکم چند نفر سیر می یعنی اونا که گوشتشو می لیاقتشو دارن، حتما ندارن. هیچ کس تو دنیا نیست که لیاقت خوردن اونو، با این روش و رفتارش و با این وقار و شکوهش داشته باشه. فکر کرد. من از این چیزا سر در نمیارم. ولی میدونم که شانس رو بردیم که مجبور نیستیم خورشید یا ما یا ستاره ها رو بکشیم. همینقدر که روی دریا زندگی کنیم و برادرهای واقعیمونو رو بکشیم بس فکر کرد. حالا باید به فکر پاروها باشن که به جای ترمز کار میکنن. این کار هم ضرر داره هم فایده. ضررش اینه که اگه ماهی همه زورشو بزنه و مقاومتی که پاروها ایجاد کردن سر جاش باشه و قایق همه سبکیشو از دست بده ممکنه اونقدر تناب بدم که ماهی از دستم در بره. با اینکه سبکی قایق وایق عذاب هر دومونو زیاد میکنه اما به نفع منم هست که الان سرعت ماهی زیادتر از هر وقت دیگر است هرچی باد و باد آدب. حالا باید شکم دلفینو تا خراب نشده خالی کنم و یه کمی ازش بخورم تا جون بگیرم حالا تا یه ساعت دیگرم استراحت میکنم و اونو که محکم و ثابت قدمه حس میکنم بعد به عقب قایق سر کارم برمیگردم و تصمیم میگیرم توی <تصفح> این مدت میتونم ببینم چطور عمل میکنه و بفهمم چه تغییراتی میکنه این پاروها خوب کلکیان ولی دیگه وقتشه که واسه برد بازی کنم اون <تصفح> هنوزم یه ماهیه و دیدم که غلاب چجوری گوشه دهنش نشسته بود و اون دهنش رو چجوری محکم بسته بود. عقوبت قلاب چیزی نیست. عقوبت گرسنگی و مبارزه با چیزی که درکش نمیکنه، از هر چیزی بدتره. خب دیگه، حالا آه... استراد کن پیر مرده. بزن اون کارشو بکنه. نوبت تو هم برسه پیرمرد برای مدتی که به خیال خودش دو ساعت میشد استراحت کرد ماه اکنون دیر وقت طول کرد و پیرمرد هیچ وسیله برای تشخیص وقت نداشت در واقع استراحتی هم نکرده بود و تنها نسبت به وضع سابقش راحتتر شده بود هنوز هم فشار ماهی را بر دوش می کشید اما دست چپش را بر لبه بالای قایق گذاشته بود و مقاومت خود را در مقابل ماهی بیشتر و بیشتر به قایق سپرده بود. فکر کرد. اگه میشد تناب و بالاتر بکشم چقدر کارم ساده تر میشد. اما اون وقت ممکن بود با یه فشار پاره بشه. باید با بدنم کشش تناب و بسنجم و همیشه با هر دو دستم آماده تناب دادن باشم. بلند گفت ولی تو هنوز نخوابیدی پیرمرد یه نصف روز و یه شبه و حالا یه روزه که چشم هم نذاشتی حالا که اون آروم و یه نماغ پیش میره بهتر تو هم یه رایی پیدا کنی که دکبی بخوابی اگه نخوابی ممکنه گیجه گم بشی فکر کرد اما الان کلم خوب کار میکنه خوب و روشن، به روشنی ستاره ها که برادرای من هن. با وجود این بده خوابن، ستاره ها می و ماه و خورشید می خوابن. بعضی روزایی به خصوص که جریانی وجود نداره و سطح آب آرامه حتی اقیانوس هم می کرد، بس یادت باشی که بخوابی، خودتو وادار کن که بخوابی و یه راه ساده و مطمئن واسه تنابات پیدا کن حالا برو غایق و دلفین آماده کن اگه بخوای بخوابی اینجور گذاشتن پاروها واسه ایجاد رقابت کار خطرناکیه فکر کرد میتونم اصلا نخوابم ولی کار خطرناکیه روی دست ها و زانوهایش به انتهای قایق برگشت و مواظب بود که تناب را تکان ندهد. فکر کرد شاید اونم الان بین خواب و بیداری باشه اما من نمیخواب استراحت کنه. بعد اون قد این بار رو بکشه تا بمیره. وقتی به انتهای قایق رسید طوری برگشت که دست چپش فشار تناب را بر شانهش نگه می داشت و با دست راست کارد را از قلاف بیرون کشید. ها نور می‌افشاندند و پیرمرد دلفین را خوب میدید و لبه چاغو را توی سرش فرو کرد و زیر لبه انتهای قایق بیرونش کشید یکی از پاهایش را روی ماهی گذاشت و به سرعت از سوراخ دم تا فک پایینش را درید بعد چاغو را کنار گذاشت و با دست راست شکمش را خالی کرد و خوب تمیزش کرد و همه دل و رودههایش را بیرون کشید شکم ماهی در دستش سنگین و لیز بود و شکافش را بازتر کرد. دو ماهی پرنده در شکمش بودند که سفت و تازه بودند و پیرمرد مرد که هم درازشان کرد و دل و روده و ام آب و احشای ماهی را به دریا ریخت که همچنان که در آب فرو می رفت ردی درخشان از خود به جا تن دلفین سرد بود و زیر نور ستارگان سفید و خاکستری و پر لکوپیس بود و پیرمرد پای راستش را روی سر ماهی گذاشت و پوست یک پهلویش را کند. بعد آن را برگرداند و پوست پهلوی دیگرش را هم کند و دو پهلو را از سر تا دم شکافت. لاشه ماهی را به دریا انداخت و به دنبالش به آب نگریست تا ببیند از سقوطش گردابی پدید آمده است یا نه. اما تنها نور و سقوط آرام ماهی را دید. بعد برگشت و دو ماهی پرنده را لای دو دوت فیله دلفین گذاشت و چاقویش را قلاف کرد و آرام سر کارش به جلوی قایق برگشت. پشتش زیر بار تناب خم شده بود و دست راستش بار ماهی را میکشید. ماهی را روی تخته جلوی قایق گذاشت و ماهی پرنده را کنارش دراز کرد. بعد تناب را روی پشتش و میان شانه‌هایش جابجا کرد و دوباره دست چپش را به لبه قایق تکیه داد و از لبه قایق خم شد و ماهی پرنده را در آب شست و در همان حال سرعت آب را که از دستش میگذشت سنجید دستش از ذرات پوست ماهی درخشان بود و جریان آب را بر دستش تماشا کرد قدرت جریان کمتر شده بود و وقتی لبه دستش را به تختی قایق مالید، ذرات آرام از دستش بر انتهای قایق روان شدند. پیرمرد گفت، نمیدونم خسته شده یا داره استراحت میکنه. حالا به زمانم کار خوردن این دلفین تمام کنم و یکمی استراحت کنم و بخوابم. زیر نور ستارگان و با شب که هر دم سردتر میشد، نیمی از گوشت یک پهلوی دلفین و یک ماهی پرنده را که سرش را کنده بود و شکمش را پاک کرده بود خورد. گفت هرچی مزه دلفین پخته عالیه خوابش بدمزه هستم. دیگه ایش وقت بدون نمک و لیمو نمیام دریا. فکر کرد اگر عقلم رسیده بود؟ اول روز یک کمی آب روی تخته جلوی قایق میریختم تا خوش بشه و نمکش بمونه آی آی ییییهرچندکه دلفین و نزدیکیهایی غروب گرفتم و وجود این کاملا مجهز نیستن ولی در عوض جوییدمش دمشو دلم به هم نمیخوره آسمان مشرق ابری میشد و ستارگان آشنایش یک به یک فرو میرفتند گویی پیرمرد داشت به درون دره عمیقی از ابر فرو میرفت و باد آرام گرفته بود گفت تا سه روز دیگه هوا خراب میشه اما امشب و فردا خوبه خب پیرمرد حالا که ماهی آروم و ساکته واسه قایق تو رو کن و کمی بخواب تناب را محکم با دست راست گرفت و رانش را زیر دست راستش گذاشت و همه بار بدنش را به تخته جلوی قایق واگذاشت. بعد تناب را روی شانه هایش کمی پایین تر آورد و با دست چپ محکم آن چنگ انداخت. فکر کرد، تا وقتی که اینطوری با دست چپ گرفتمش، دست راستم میتونه از پسش بربیاد اگه توی خواب شل بشه و تناب رها بشه دست چپم بیدارم میکنه. البته کار دست راستم مشکله اما اون به عقوبت عادت داره. اه اگه بیست دقیقه یا نیم ساعتم بخوابم باز خوبه. پیرمرد به جلو هم شد و با همه ی بدنش روی تناب چونباتمه شد. و تمام بارش را به دست راستش سپرد و خود به خواب رفت دیگر خواب شیرها را نمیدید و در عوض خواب گله بزرگی از ها را میدید که تا شعاع پانزده کیلومتر پراکنده بودند و هنگام جفتگیریشان بود و بالا و بلند از آب بیرون می پریدند و بعد دوباره به همان حفرهای که از آن به هوا جسته بودند فرو میرفتند بعد خواب دید که در دهکده است و روی تختش است و باد شمال میوزد و سردش شده و دست چپش خواب رفته چون به جای بالش زیر سرش مانده است. بعد از آن خواب ساحل بیکران تلائی را دید و دید که در تاریک و روشن غروب اولین شیرها به ساحل آمدند. و بعد شیرهای دیگر آمدند و پیرمرد چانه را به تخته جلوی قایق تکیه داده بود که زیر نسیم غروب ساحل لنگر انداخته بود و منتظر بود که شاید شیرهای بعدی بیایند و شاد و سرخوش بود ماه مدت ها بود که بالا آمده بود اما پیرمرد هنوز خواب بود و ماهی یک سر قایق را میکشید و قایق